درود بر دوستان عزیز یاران همراه و علاقمندان به قصه های شاهنامه فردوسی با ششمین قسمت از داستان زال پهلوان افسانه ایران و پدر رستم دستان در خدمتتون هستم در برنامه گذشته داستانمون به اینجا رسید که سام زال رو با نامه ای به نزد منوچهر شاه فرستاد تا مگر منوچهرشاه با دیدن زال و پیبردن به صفات نیکو و پهلوانی زال ماجرای ازدواج اون و رودابر را رو بپذیره و به قول معروف از شر شیطان پایین و از لشکرکشی سام به کابلستان هم جلوگیری کنه. از طرف دیگه هم سین با هدایای فراوانی به دیدن سام اومد و خواست که سام این مسئله رو به یک شکلی دوستانه و منطقی حل کنه و سام هم که دید سیندخت زن بسیار فهمیده با تدبیر و کاردانیه بهش گفتش که خیالت راحت باشه به محراب کابلی هم بگو که خیالش راحت باشه من به هر شکل که هست موافقت منوچه شاه رو میگیرم گیرم و ترتیب ازدواج زال و رودابر رو خواهم داد این هدایا رو هم نگه دار تا بعداً به عنوان جهیزیه به رو سدامادمون بدیم و سیندخت هم راهی شهر کابل شد و این خبر رو به همسرش محراب داد حالا بشنویم ادامه داستان رو و بازگشتن زال از نزد منوچه شاه وقتی که زال نامه سام رو به منوچهر شاه میده منوچهر در نظر اول از دیدن یال و, کوپال و ظاهر برازنده و طرز صحبت و رفتار زال بسیار خوشش میاد اما میگه که این جوان باید آزمونهایی رو پس بده و من باید مطمئن بشم که این جوان واقعا، بار زندگی شهری زندگی اجتماعی در بین انسان ها خوب گرفته و میتونه تونه جانشینی برای پدرش حداقل در این سرزمین باشه. آزمون های بسیار سختیه که این بخش یکی از بخش های بسیار جذابش شاهنامه فردوسی سالاتی که هفت موبد از زال میپرسند و زال همه رو با دقت با هوش و درایت خودش پاسخ میده و در نتیجه منوشه شاه رو به نوعی متقاعد میکنه که اون رو بپذیره و به خواستش به نوعی تن در بده بعد چند روز زال به اردوگاه سام برمیگرده چون هیچ کس از اومدنش با خبر نبود هیچکس هم به پیشوازش نمیره وقتی که به خیمه و سراپرده پدر میرسه نگهبان سراپرده با بانگ بلند ورود اون رو به سام پهلوان اطلاع میده زال وارد چادر یا سراپرده پدرش میشه و به پدر درود میفرسته سام هم که از دیدن اون بسیار خوشحال میشه پسرش رو در آغوش میگیره و با هم خوش و میکنن و هر دو از دیدن هم شاد میشن و پدرش سام در مورد گفتگویی که با سیندخت داشته و اومدن اون به اینجا با زال صحبت میکنه و بعدم هم میپرسه خب حالا تو بگو ببینم منوچر چیکار کرد و اون چی گفت زال هم میگه ای پدر بزرگوار مژده بده که منوچه با خوندن نامی تو و حالا یه سری داستانهای دیگه‌ای که وجود داشت از کاری که کرده بود پشیمون شد و به من گفت که این پیغام رو به تو بدم که دست از لشکرکشی بردار جنگ با کابل و لشکرکشی به کابلستان منتفیه و زودتر ترتیب پیوند ازدواج زال و رودابر رو بده سامبا شنیدن این خبر بسیار خوشحال میشه و حالا نوبت اون بود که داستان اومدن سیندخت و پیمانی رو که با اون بسته برای زال تحریف کنه زال جوان از شنیدن ماجراهایی که بین پدرش و سیندخت اتفاق افتاد بسیار خوشحال شد و پدر رو آفرین گفت و از اون سپاسگزاری کرد به عجله داشت که هرچه زودتر به اتفاق سام به کابل بره و مراسم خواستگاری روداور رو انجام بدن برای همین سام سپه بعد روز بعد فرمان داد که خیمه و رو جمع کنن و آماده رفتن به سمت کابل بشن. اما این بار نه برای جنگ و ستیز بلکه برای دوستی و آشتیکنان. سپاه آماده شد و به راه افتادن. وقتی که به کابل رسیدند مهراب کابلی و بزرگان کابل و همسرش سیندخته دانا و خردمند به استقبال اونها اومدند و پذیرایی مفصلی از اونها کردند تا اینکه بالاخره مسئله خاستگاری و پیوند زال و رودابه مطرح شد و قرار شد که دو هفته مراسم جشن و پایکوبی در کابل برگزار بشه و این دو جوان به هم برسند و با هم ازدواج کنند با اینکه که همه مسائل داشت به خوبی پیش میرفت و به خیر و خوشی تدارکات عروسی زال و رودا به برگزار میشد در دل مهراب آشوبی بود که مبادا این خوشی دیری نپاید و دوباره کار به دشمنی بکشه از اون سو سین دخت که بسیار به خودش میبالید به خاطر تدبیری که داشت و مذاکره ای که با سام کرده بود و دیدن این نتیجه اون رو دلداری میداد که نگران نباش و همه چیز داره به خوبی پیش میره دخترمون با زال پهلوان فرزند سام سپهدار سام سوار بسیار هم خوشبخت خواهد شد و آینده کابل هم تضمین میشه خلاصه دو هفته جشن و پایکوبی برگزار شد و به مردم غذاهای فراوونی بخشیده شد و همه مردم کابل در جشن ازدواج ظال و رودابه شرکت کردند بعد از اینکه این مدت به پایان رسید عروس آماده رفتن به سمت خانه همسر شد یعنی به سمت زابل روانه شدند محل حکومت و فرمانروایی سام و زال که حالا دیگه قلمرو زال پهلوان شده بود مهراب سیندخت رو هم برای مدتی به همراه دخترش رودابه به زابل فرستاد ظاهرا اون زمان رسم بوده و میدونست که نه رودابه تاب دوری سیندخت رو داره و نه سیندخت طاقت دوری از دختر رو برای همین سیندخت رو همراه با دخترش به سمت زابل روانه کرد. سام هم که خیالش از بابت ازدواج این دو و از بابت پسرش راحت شده بود دوباره برای برقرار کردن نظم در مناطق مختلف ایران مخصوصاً گرگزاران به همراه سپاهش به اون سمت رهسپار شد. مدتی از ازدواج زال و رودابه گذشته بود که متوجه شدند رودابه باردار شده و بعد از مدتی این بارداری به شکلی خطرناک و غیرطبیعی جلوه کرد. شکم رودابه بیش از بقیه زنان باردار بزرگ شده بود. و انقدر این دوره بارداری برای رودابه سخت بود که رودابه در بستر بیماری افتاد رنگش به زردی گرایید و ناخوش احوال شد سیندخت به سراغش اومد و گفت دختر عزیزم چه اتفاقی برات افتاده چرا چه رنگ, رنگ رود پریده چرا رنگ زار و نزاری رودابه جواب داد مادرم انگار که شکمم رو پر سنگ کردن این بچه خیلی بیش از حد سنگینه. فکر نمیکنم من بتونم تا موقع به دنیا آوردن اون تحمل کنم. این وزن و این درد سنگینی رو که این جنین به من تحمیل کرده. این مطلب سیندخت رو بیش از پیش پریشون و نگران کرد. شب و روز عشق می ریخت و می ترسید که نکنه دخترش در هنگام و از احمل و زایمان از دست بره. یکی از روزها رو دابه از شدت درد بیهوش شد و بر زمین افتاد سیندخت از ترس فریاد میکشید و با ناخونهای دستش صورتش رو خراش میداد نزدیکان و آشنایان و ندیمه‌ها به سراغ زال رفتند و به پهلوان گفتند چه نشستی که حال همسرت بسیار خرابه و از شدت درد بیهوش شده زال هم به بالین رودابه اومد و شاهد درد و رنج شدید رودابه بود و نمیدونست چی کار باید بکنه که یاد و سی مرغ افتاد و پری که سی مرغ بهش داده بود لبخندی روی چهرش نشست و به سین دخت مجده داد که چاره کار رو پیدا کردم حالا یک ظرف پر از آتش یا مجمری پر از آتش برای من بیارین ظرفی شبیه منقل پر از آتش کردند و روبروی زال گذاشتند زال همپر سیمرغ را در آتش انداخت که بعد از چند لحظه صدای رعداسایی در آسمان پیچید و پرندهی غول پیکرم مازیبا با بالهای رنگارنگ پدیدار شد زال با دیدن سیمرغ زانو زد و گفته مادر گرامی از دیدنت خیلی خوشحالم غم بزرگی روی دلم نشسته و فکر میکنم که فقط تو میتونی بهم به کمک کنی سی مرغ با مهربانی بهش گفت فرزندم بگو ببینم چی شده چه اتفاقی افتاده که شیرمرد من پهلوان پهلوانان اینطور اشک عشق میریزه زال ماجرای درد کشیدن و بارداری همسرش رو برای سیمرغ تعریف میکنه سیمرغ که بسیار دانا بود بهش میگه پسر عزیزم دوهگین نباش همسر زیبایی تو قرار پهلوانی رو به دنیا بیاره پهلوان بی همانندی که حتی قوی ترین شیران هم در مقابل اون به زانو در میان و به پاش میافتند با یک نحره اون پوست پلنگ جنگی پاره پاره خواهد شد و اون بزرگترین پهلوان ایران زمین خواهد شد برای همینه که این بارداری با بارداری های دیگه فرق میکنه حالا مشکلی نیست من دارویی رو به تو معرفی میکنم که با اون رودابه رو باید بیهوش کنی بعد از اینکه اون دارو رو به صورت یک جوشانده یا یک دمنوش به قول امروزی درست کردی و به خورد رودابه دادید رودابه بیهوش میشه بعد باید موبدی چیره دست رو بیاری با خنجری آب دیده و بسیار تیز تا پهلوی رودابه رو بشکافه و این بچه رو از پهلوی مادر بیرون بکشه چون زایمان طبیعی در این حالت نمیتونه اتفاق بیفته دست آخرین گیاهی رو هم که بهت میگم بگیر فراهم کن با شیر و مشک اونو آمیخته کن بکوب و در سایه خشک کن بعد اونو بساب و پودر اون رو یا قبار اون رو به پهلوی رودابه بگذار با اون یک مرحمی درست کن و روی جایی که با خنجر شکافته شده بمال و پانسمان کن تا زخم اون خنجر هم درمان بشه بله دوستان این اتفاق چیزی شبیه اون چیزی که ما امروز به اسم عمل سزاریان میشناسیم و یک زمانی یادمه که فرهنگستان ایران هم برای عمل سزاریان عمل رستم زائی رو پیشنهاد کرده بود که اجماع جا نیفتاد ولی بنا و اساطیر ایران اولین کسی که به شیوه غیر معمول و با سبک جراحی به دنیا اومده پهلوان ناومی ایران رستمه. حالا از بخش داستانی این قضیه بگذریم نشان وش بالا و دانش سرشار فردوسیه که در هزار سال پیش این داستان رو به این شیرینی روایت کرده و به این دقت و باید بهش افتخار کرد زال با شنیدن دستورات سیمرغ دلش راحت میشه آروم میگیره و از اونجایی که به دانایی سیمرغ و مهربانی اون اطمینان داشته احساس میکنه که سبک شده از اسیمرغ تشکر میکنه و سیمرغ نشانی اون گیاه و دارو رو به زال میده و دوباره پری از بال خودش رو به زال میده که اگر دوباره باز هم به مشکلی برخورد کرد به همون شیوه قبل این پر رو بسوزونه تا دوباره سیمرغ به سراغش بیاد زال هم تمام مواردی رو که سیمرغ گفته بود به اجرا میگذاره یک موبد حرفه‌ای و کاردان که حالا اون زمان ظاهراً کار پزشکی رو هم موبدا انجام میدادن میارن با ای که سیمرغ گفته بود رودابر بر او بیهوش میکنن با غنجری تیز پهلوی اون رو میشکافن و بچه رو بدون درد سر و مشکل به دنیا میارند نوزاد پسری بود درشت و شاداب و تندرست و تا اون زمان هیچ کس چنین نوزادی با این شکل و شمایل ندیده بود درست انگار یک بچه شیره که از پهلوی یک انسان به دنیا اومده و از همون نوزادی و به تولد آثار پهلوانی در وجود اون کاملا هویدا بود بعد از اینکه مرهم ها اثر کرد و حال رودا بهتر شد و به هوش آمد پسرش رو دید و لذت برد از دیدن اون فرزند برومند و سالمی که به دنیا اومده نام اون پسر رو رستم گذاشتند و دوباره جشن و پایکوبی و شادمانی شروع شد و فرستاده ای رو هم به نزد سام فرستادن و خبر به دنیا آمدن رستم نوه سام پهلوان پهلوانم رو بهش دادند و داستان شیرین اشق زال و رودابه و سمره این اشق یعنی رستم دستان در همینجا به پایان میرسه امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید و ما امیدواریم که این مجموعه داستان‌های شاهنامه با این بیان ناقص بنده فقط تلنگری باشه برای اینکه دوستان عزیزم جوان و پیر، کودک و بزرگ کمی بیشتر به شاهنامه نزدیک بشن، به این فکر بیفتند که شاهنامه رو بخونند و از داستان‌هاش لذت ببرند و پند بگیرند و درس بگیرند. که این گنجینه بزرگ به پارسی سراپا درس و پنده برای همتون روز و روزگار بسیار خوشی را آرزو میکنم تا ای دیگر و داستانی دیگر از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی همتون رو به خداوند بزرگ می سپارم روز روزگارتون به خیر و به کام